گفتن از اون که سبسته نخورم در نتیجه خیلی سخته من محمد العجفی هم 34 سال سال از اسفحان و قرار 20 تا 30 صحبت کنم نمیدونم چند نفر اینجا هستن که احتمالا با این ماجره هاشن. میتونم پاسشونم بسنم زیادید خب من پونزده دقیقه وقت میخوام لطفاً چون احتمالاً خاموش میشه سر 15 دقیقه به من پشتار بدید که صحبت تموم کنم واقعش اینه که بیستا سی خیلی ساده منفی پنج قبلش و یه مثبت پنج بعدش داره در واقع ما هست که 20 -30, 20 -30 ساله ها نیستن فقط آدم های پونزده ساله تا به یه و ساله. قصه چیه؟ قصه اینه که ما یه سفری توی زندگیمون تجربه میکنیم سفر زیادی تجربه میکنیم ولی یکی از سفرهایی که تجربه میکنیم اون جاییه که آروم آروم از اون محیط خانواده جدا میشیم و قراره که به مرور وارد اجتماع بشیم و در واقع های اجتماعی رو بپذیریم. میگم نقش به خاطر اینکه فقط شغل مد نظرم نیست. فقط اینکه در واقع حالا قرار کارمندی یا به اصطلاح کارآفرین مد نظرم نیستش. اینکه من قراره ازدواج بکنم، قرار نقش پدری داشته باشم، نقش مادری، فعال محیط زیست باشم، به عنوان یک شهروند و, و, و هزار تا در واقع نقش دیگه. متاسفانه چون اکثر آدم که اینجا هستن دیگه فکر میکنم تجربه شد دارن و سالهای خیلی زیادی را توی سیستم آموزش رسمی گذاروندن. حداقل حدود دقا سال طول کشیده که برسیم به اون مقتعی کنکور و بعد از اون رقابت یه چیزی حدود شد چار پنج سال حالا برای آدمی مثل من شیش سال طول میکشه تا لیسانس بگیرم و بعد حالا مقاطعه بالاتر ولی علاوه بر این که حالا فرض میکنیم چون این ردیفی جلو یه رو باید ملاحظه کنم فرض میکنیم که تو دانشگاه خیلی چیز خوب بهمون یاد میدن تخصص، دانش، در حوزه تخصصی که در ما داریم درس میکنیم فرض میکنیم دیگه فرض درسته ولی واقعیت اینه که به نظر می‌رسه که یه اتفاقای مهمی نمی‌افته به معنی یه اتفاقای مهمی نمی‌افته؟ بیشترین آماره بیکاره توی درموه‌فار و دانشگاهی ماست به نظر می‌رسه که خیلی از معزلات با افسایش در وقت، حالا یه مسائل با افسایش زن و مباطع، بالاتر تحصیلی، لزوماً حل نمی‌شه اینجا یه بخش زیادی از دوستان، 20 تا 30 هستم؟ تراز یادیانم میستم سی ساله داریم. یتوی اداده خیلی زیادی هستن که یه مقدار کمتره، ولی احتمالاً به, زودی به این دور میرسن. و احتمالاً دوستانی هم که یه مقدار بیشتره، با 20 تا 30 ساله ها سر رو کنده زیاد میزنن. من نمیخوام در مورد مشکلاتی ایک که صحبت کنم ولی به نظر میرسه ما در موقع توی جامعه زندگی میکنیم که به شدت ها تجربه به این معنی که ما 20 میشه، میشه ولی تا و پنی سالگی 35 سالگی می میرسیم و بعد از اون واقعا از نظر تجربه زیسته در واقعا خیلی فقریم. کم سفر رفتیم، تجربه های کار گروهی نداریم، کارهای داوطلبانانه انجام ندادیم. و تو این مسیر در واقع اتفاقی که افتاده اینه که با دو تو ماز، دو تا مسئله در واقع مواجه میشیم یعنی خلی ساده بگم دو تا اتفاق بد داره میفته. اتفاق بعد اول. یا بهتر بگم اول دوم را بگم. اتفاق بعد دوم چیه یعنی که ما خیلی از کارهای مهم زندگیمون رو به می می‌ندسیم چند نفر این جز آقایون هستن که به خاطر اینکه دیرتر احتمالاً برن سربازی درسشون کش دادن یا تصمیم گرفتن مقاطع بالاتر درس بکنن معمولا یه چیز رایجه تو جامعه ایران یعنی خود من یکی از دلایل هستی که 6 سال دیگه سامسونگ کشش دادم واسه این که فکر می‌کردم یا اتفاق قرارداد افتاد ولی دیرتر سربازی یه سری تصمیم مهم وجود داره توی این دوره حالا ممکنه این نفر زودتر شروع کنه، این نفر دیرتر مثل ازدواج فارغ از این که البته کار خوبیه یک کار بدیه طبیعتا حالا من خودم ازدواج کردم مثل بچه دار شدن، نقش پدری و مادری مثل این که برم کار کنم و پول در بیارم مهاجرت، شهر محل زندگی اتفاقی که میفته، متاسفانه بخش زیادی از آدمایی که به این دوره میرسن خیلی از تصمیم‌ها و, و کارهایی که واسه این دوره میتونن شروع بکنند، رو تعویق میندازن یعنی من مثلا طرف داره درس میخونه پدر و میگن که منامش اینا رو یه ضربه مسخره می میگن پدر میگه که به دخترش میخوام بری کار کنی چقد بهت میدن دو برابرشو میدم بعد کار نکن برای چی میخوای کار کنی یا یعنی اساسا دانشجو بودن تو ایران شغل یعنی طرف مثلا تا و 25 سالگی داره فقط درس میخونه و بعد واقعیتی این که از خیلی جایی زندگی میمونه کار کردن، ازدواج کردن، بچه دار شدن خیلی از تجربه‌های خوب مثل سفر کردن، بیزینس را انداختن همه این چیزهایی که ما به تعبیل رو نگذیم حالا اتفاق بعد کجا میفته؟ دقیقا اونجایی که ما میرسیم به مرز مثلا فرض کنید حدود سی سالگی من بهش میگم سی سالگی اتفاق که میفته توی یک بازه کوتاه مجبوریم. یه‌سری کارای خیلی مهم انجام بدیم. یعنی یه دفعه ببینیم خب دیگه مجبورم زای دیگه مثلا باید برم پول در بیارم. دیگه خیلی به این فکر نمی‌کنم که شغل رو دوست دارم یا ندارم. بعدش شغلی داشته باشم که مثلا 10 تومن اجاره رو بدم مثلا. بالاخره هر کسی ممکنه که در شرایط قرار بگیره ازدواج کنه. حالا بیرادی هم نداره ولی خب واقعیت اینه که 28 29 30 حالا یه ذره کمتری یا زودتر شروع می‌کنیم تصمیم گرفتن به ازدواج. به بچه دار شدن به بهویزینس را انانداخن به اینکه کجا زندگی بکنم تو چه شهری ای چرا معاجرت کردم نکردم چرا این رشتر رو خووندم چرا اون یکی رشتر رو نفوندم چرا زودتر ازدواج نکردم چرا دیرتر دیر دیر دیر بچه دار نشدم و تو یه بازه کوتاهی یه فشار روانه خیلی سنگلی اتفاق میفته که خش می بینیم دیگه آار روم آار طلاق میره بالا آار ازدواج میاد پایین میان ایننس نر دواج شهر میره بالا سی سال. بچهای کلامیش در میشن کل آدم دارین که دنبالش حقوق می‌گردن ولی دوستان وقتی دارن دنبال در واقع یک نیروی انسانی کارا برد می‌گردن سهمواد بگردن، ولی پیدا نمی‌کنن این خیلی تدبیرش میبه بحران دی اس ال به تر تدبیرش سالگی یعنی یک بازه این حدوداً در سن حالا فرض میکنیم 28 تا 34 5 سال که آدمو باید یه حجم زیادی از فشارهای روانی رو تحمل بکنن و خب اه, خیلی سخته و یه آماری میفوندن که میگفت از سال 60 یعنی من خودم 61م یه چیزی حدود 15 میلیون آدم متولد شدن تو ایران یعنی تقریبا 15 میلیون آدم هستن الان تو این بازی سنی ها حدود 28 تا سال که اینا احتمالاً الان دو تا روی این مثلا که چرا این رشته رو خوندم چرا نخوندم چرا زودتر ازدواج کردم چرا دیرتر ازدواج نکردم از این داستانا اینطور این, این اتفاقت صفور اتفاق بدیه به نظر من ولی یه اتفاق خیلی بدتر میفته که اون اولی است که در واقع دارم دوم میگم اونم اینه که یادم یا وقتی میخواد بره المپیک چهار سال پوستش گنده میشه فرض کنید یه آدمی میخواد برسه 28-29 سالگی و همه این فشارهای روانی روش قرار بگیره به نظرم اشکالی نداره بازم ولی به شرط این که اون چند سال تمرین قبلش اتفاق افتاده باشه واقعیت اینه ما علاوه بر این که بحران رو به تعویق میدازیم تصمیمای مهم زندگیمون و کارهای مهم زندگیمون رو به تعویقش میدازیم یه کار دیگه می که اون خیلی خطرناکتره و به نظرم میاد خیلی جا سیستم آموزش رسمی رسانه ها، پدر مادر خانواده، فرنگش شما هم داره به این قضیه دامن میزنه. اونم اینه که آدمات 28 سالگی زندگی رو میگذونم ولی تمرین نمیکنه. من توی این یک سال و نیمی که در واقع دقیقا اگر بخوام از نشسته اولی که با مهمان برگزار کردیم. بگم یک سال 6ش ما و, و چه روز اولی مهمونه من فرزینه فردیکی از او خیلی خوبم که مادرم همش سر باشه. یه یش زود ده 68 ایونت برگزار کردیم در تهران و خارج از تهران. فیزیکال فکر میکنم بالای 2700 تا آدم اومدن شرکت کردن و خب حالا به حال با آدم‌های مختلف در فضایی مجزه جای دیدیم تعامل داشتیم. متاسفانه خیلی کارهای دیگه میتونیم انجام بدیم که انجامش نمیدیم و حواسمون بهش نیست. توی این نشست‌ها و مهمونای مختلفی که داشتیم راستش بیشتر از اینکه شاید بخوام بگم تلاش این بوده که دیگران به نیچیزی یاد بگیرن که البته خب تلاش کردیم خودم خیلی چیزا یاد گرفتم و اسمه ای برم کیچی گفت ولی میخوام چند تا از اون کارهایی رو بگم الان آخر این برنامه و این صحبت رود 5 دقیقه مونده که واقعیتش اینه که این مهنونای ما وقتی میمادن قصه زندگیشون رو توی 20 تا سی سالگی میگفتن یاد گرفتم ازشون مثلا خیلی از ماها دوچار فقر تجربه این و اتفاقی که میافته اینه که به سی, سی و سالگی سال میرسیم ولی کم سفر میریم من نمیدونم چند نفر از دوستانی که اینجا هستن تجربه جدی سفر رو داشتن از جنس مثلا بک پک این ها ایف نمیدونم واقعا سفرهایی که لزومن برامرز یه دقیق نداشتن اینجور نبوده که من ساعت چه میدونم 4 بعد از پرواز کنم برای زیاد میره. البته خب ما مثلا میاد دقیقاً این رو میکنه میره مثلا فرض اینجا از ای از به فرداش برمیگرده نه دقیقا منظورم سفر اینجوری نیست سفری که خیلی اوقات یه چیزای پیش بینی نشده اینطوری توشون اتفاق میفته وقتی که 10 سال پیش من میخواستم برم سفر میگفتم خب پول ندارم ماشین ندارم الان خب کار دارم بیزنس دارم زن دارم بچه دارم باید دیگه انجام بدم. سفر یکی از اون چیزایی که واقعا به نظر میرسه که توی فرهنگ ما برای این دوره چیز کاملا پس خلیه که جدی گرفته نمیشه یکی از چیزایی دیگه یکی که واقعا خیلی آقا توی این برنامهایی که داشتیم میگفتیم و آدم در واقع خیلی هاشون میگفتن چرا مگه من, من آدم هموقی هم برم این کار رو بکنم، کار دافتالبانه بود خیلی وقت‌ها هم فکر میکنن کار داف کار کار کارآموزی، کار دانشجوی، کار احمقانه ایه. چرا باید کاری انجام بدم ولی پول در نیاورم ازش؟ ولی واقعیت اینه خیلی از اتفاقای مهم همونجا داره می‌افته. تیم ورک، اینجا بتونم در واقع یه پروژه اجرا بکنم، اینکه بتونم با آدم‌ها مذاکره کنم، قانعشون کنم، راهبری کنم، و خیلی اتفاقای دیگه و ساختن شبکه ارتباطی یعنی اتفاقایی که واقعا تو تاییدافت طلباری میفته و اصولا تو فرهنگ ما خیلی اوقات هستن جدی گرفته نمیشه کار کردن به من یه پول در آوردن اون کار کردن به من یه تجربه بود شاید من نمیدونم چرا ما به تعویق میندازیم یعنی اولا اینکه فکر می‌کنیم آدمی که می‌خواد برش شغل داشته باشه و کار کنه و پول در بیاره فقط پول مهمه ولی واقعیت اینه که ام مسئله فقط پول نیست ولی از اون طرف پول هم مهمه یعنی اینکه آدم‌ها شروع کنن حتی شده یه کار پاره وقت داشته باشن که تجربه کنن و پول در بیارن یه اتفاقی که بازم خیلی به تعویق میفته دوتا تا مورد دیگه میخوام آخره این داستان بگم که به نظرم مهمه یکیش اینکه آدمای تو این دوره یکی از به نظرم مهمترین چالششون اینه که یه سری آدم پیدا کنن حالا بعضی بهشون میگن مشاور بعضی میگن راهنما بعضی میگن کوچ بعضی میگن منتور هر کدوم از اینا هم ممکنه یک معنایی داشته باشه و یک دربا به تعریفی داشته باشه ولی دیگه یه آدمی که یه ذره بشه هر از وایی رفت سراغش و از تجربهش و از اینکه که باش گفته بون میکنی یه چیزی یاد بگیری و یه چیزی اضافه بشه و به قول یک از دوستان یک از مهمونه همون وجیده کیانپور حرف خوبی میزد میگفت که اگه دومال کوچ و منتور میگردید لزوماً کوچ و منتور نیستن که یه شغلی دارن به این اسکی حالا بیا پول بده نه هستن کسایی که این کارو میکنن ولی اون آدمی که ممکنه کوچ یا من باشه آدمی که باید برم پیداش کنم من باید برم در واقع صلاحیت خودمو بشی اسفاد کنم واسه اینکه اون آدم بیاد و فکر کنه که من ارزش اینو دارم که در واقع برام وقت بذاره و من یه چیزایی ازش رو یاد بگیرم همه اینا رو کنار یکی از چیزهایی که حالا به من آخر میخوام بگم واقعا تو یک سال نیم گذشته یکی از بهترین دوره های زندگی شخصی خودم هم واسم بود به این دلیلی که الان دارم میگم و فکر میکنم کاش خیلی زودتر تو مدرسه تو دانشگاه خیلی از استادامون خیلی از پدر مدرها در واقع اینو بهمون میگفتن این بود که من برایندیم از شبکه ارتباطی که توش قرار دارم متاسفانه ما خیلی وقت حواستم این قضیه نیستش این که بیشتر تاولون با کیه تو چه شبکه ارتباطی در واقع هستیم؟ و این شبکه ارتباطی چقدر نقش شتاب دهنده برای رسیدن من به اهدافم داره و چقدر نقش حمایتی می‌تونه داشته باشه به عبارت دیگه شاید من برای بر اند در واقع آدمی باشم که بیشتر برخورده باشون دارم شبکه سازی حرفه‌ای و در واقع پیدا کردن یک ای از آدم‌ها که همیشه هم از روابط ضعیف در واقع شروع میشه به رابطه قوی می‌رسه یک چیزی داره که واقعا یاد نگرفتیم یک رابطه ضعیف دوستانه دوستانه دوستانمون میتونن بعد از یه مدتی هم به دوستانه صمیمیه وا. ممکنه که اونا در این که دو دیگه شریک یکی از شماست تو بیزینستون، الان تو این جهنم نشسته باشه، و شما توی بریک، توی استراحت باشی، گپ بزنید، بعدا احساس کنید که این خوبه و یک رابطه ضعیفی شروع بشه و به مرور تند و یک رابطه قوی بشه. واقعیت اینه که من حسین که در واقع دار اون داره رو برگزار می‌کنه، در یک تماشی دیدم که در واقع با موضوعیش دار مارکتینگ بود و من به منو انگیزه شرکت سباس رفتم بودم اونجا و خب توی بریک وایس شدیم گپ زدیم گپ زدیم اونجا به این شوکه اینتربات آروم, آروم قوی تر بشه حالا خدای شکر دوستاش بعد بیشتر میگه و من چهجوری رفتم اونجا به واسطه شرکت سباس یکی که با مدیر آمده اون شرکت که امروز هم اینجا هستش و دوستای خیلی خوب منه به واسطه یه دوست دیگه ای آشنا شدم که اون دوست سرا در واقع یک دوره آموزشی با شوشه شدن و اینجوری دو که جلسه اول میخواستن خودش هم برن بیرون و کلا اینجوری بودم که جلسه دومه و حسلم هم داشت سر میرفت چون خیلی در واقع با آرامش صحبت می کرد ولی واقع یک رابطه ضعیف اتفاقی که افتاد همین جور زنجیروار یک حجم زیادی از دوستان رو با سیمن ایجاد کرد دوستانی که باشون دوستی کردم دوستانی که باشون کار کردم خیلی بیشتر از اونی که برای اون دوره‌های آموزشی که من در واقع با اون دوست اولا آشنا شدم پول خرچ کنم. بعد از همون پول دروردم حتی. بنابراین، این چون گفته بودم 15 دقیقه بیشتر وقت نمیخوام و پونزده دقیقه هم تموم شد، حتی 30 ثانیهشم مونده نبود. تو این 30 ثانیه هم کاری خواهش ازتون بکنم. قرارو اصلا نیف دقیقه باشه. من, باید من دو دوره رو کردم. درسته؟ درسته؟ یک دقیقه اشکال نداره. یه دقیقه قرارو لطفا بلند شید و دور و حداقل یادم هست که تو این جمع نمیشناسیدش حالا ممکنه پشت سنیتون باشه جلوتون تو, جلو، تو هر چیز دیگه همین الان بلند شید و یک دقیقه یه گپ با هم بزنید و یک کارت ویزیتی رو رد کنید و یه آشنایی پیدا کنید که وقتی رفتید اون بیرون دوستایی بیشتری داشته باشید که بتونید باشون گپ بزنید و بعد از من این سفرونی قراره باشه و بعد از اون سفرونی وقتی رفتید اصراحت لطفا وقتی برگشتید خواهش دارم اگر زود دست خودم بود حتما این کار رو میکرم جاتون رو عوض کنید یعنی وقتی برگشتید میشه یه آدم دیگه بشید که نمیشینیدش نمیخوام آخره امروز که دارید از اینجا میدید حتی قد از حرف ما چیزی یاد نگرفتید یا تجربه به درب کنیم تو خودم رو میگم با کموده انترام حتی دو تا دوست جدیفه بکرد باشید خسره باشید ممنونم خ خواستی که در مورد پروژه 20, 20 تا 30 تو گوگل بزنید 20 تا فکر میکنم اولین لینکی که بهتون میده بایست <تصفيق> بله میتونیدشین بایداره ممنونم از اتون بایداره کنجاویه دامه برمیت خیده خوب باشید ممنونم از اتون